تا دایمت س دایم مع این با میم و رحمتی که همه راخیم. از تنجیز علم اجمالی در مرحله و تعکلیف مردم نایمی شروع رو بریدم که توضیحاتش گذشت حالا با قطع نظر که مورد تصیری <تصفيق> ایشان درست بود یا درست نبود، که دیروز شبهش بزرش امر پنجومی رو به عنوان آخرین عمر مرحوم نایمی دارن در صفحه 84 همین جلد سه از تغییرات مرحوم کازمینی یا کازمین مرحوم یا ال... کتاب فوادر اصول را خامس اندای کن مافل بین مایوجه با بطلان اقتضاء علم اجمالی و صداقت عن الاعترم منتهال و حکم الحاکم و اقرار المستتب تنسیف المال أو فسخ العقد المتنازع فيه یشون میفرمایه که از چیزایی که باز مرچه میشه که علم اجمالی منجز نباشه اگر نقطه ای در بین بیاد که تنجیز علم و تأثیر علم رو برداره مثلا فرست که این شارع حکم به قبول اقرار شخص بکنه یا تهاکم بکنه یا مثلا حکم حاکم باشه یا تحالف باشه مواردی از این قدیل حالا این مراد ایشان که من دیروز هم توضیحش از خیردم یا امروز تفسیرش این بحث معروفیست که اگر مثلا در موردی به کشید من سابقه عرض کردم اگر محور نزاع یکی باشه اصطلاحاً باب مدعی و منکر میگن اگر محور نزاع دوتا تا باشه باب تالوفت یعنی بهش اینطوری یعنی مثلا مثلا میگه این مال منه میگه مال تو نیست محور یکیه اگر محور نزاع یکی باشه اینجا رو اصطلاحاً باب مدعی و منکر میگن و همون نکاتی در باب قضاوت اما اگر محور نزا دو تا شد یا حالا بعد هر دو بیانه بیارم بیانه ها تصابت میکنی یا دو قسم میخورن محور نزا دو تا شد یا بعد از بیان قسم میخورن یا بعد از بیان بیان, بیان نداشته باشن این روی اصطلاح هم بابه تحالف میگن و مراد از بابه تحالف این است که هر دو قسم بخورن مثلا شون میگه من کتاب رساله به تو فروختن مثلا به دنیزاد، اون میگه نه من کتاب کفایه رو از تو خریدم. دو تا محبره. یا اون مثلا میگه من این فرش رو فروختم به این قیمت، اون میگه نه آقا این ضبط صوت رو به این قیمت یا این تلویزیون رو فروختی. اگر مهلره نزاد دو تا شد اصطلاحاً باب تحالفه. چون بعد هر دو بیان بیارن اگر هم ندارن یا بیانه تعرض کنند نوبت اینکه هر دو قفل بکنن. این یه جهتی این که هر دوشون قصر می‌کنن اصطلاحا بابا سهالو میان اون هم در باب از, از این اینجوری هست که نزد خدا خدمتونه عرض کردن در اصل این شبهات دیگه ما که اون خیلی طولانی ما یه معیار جامع جوری خدمتونه عرض کردن خب این بحث معروفه که اگر این دوتا تا اتفاق رو بر معامله داره یکی میگه من ضبط صوت به تو فروختم به صد میگه نه این مثلا فرض کنیم فرض حقوقی 100 سر تومان از هر دو هم خوردن حاکم حکم می‌کنه که هم فرش هم زکات سود به طرف برمی‌لده سر هزار تومان مال اون این خب حالا بحث در که اگر کسی آمد هم زکات سود از این آقا خرید هم فرش میدونه قرارداد یک اشمالی اینه مالی این که دیگه است چون واقعا که متفاوت شد اینجا میگن علم اجمالی از اثر افتاده من که شرط تنگیز علم اجمالی اینه که یه چیزی نهید در وسط از کارش بندازه اثرش بندازه اگر آمد و رو اثر انداخی علم اجمالی منجز نیست یعنی یک تصرف شرعی. بعد خودی ایشان ولتر بود این حاضر امر وله امر سابق در امر سابق یادم وارکمش از دیوز اون نکته این بود که اگر علم آمد به خصوصیت یا به طرف یک عنوان پیدا میکنه علم نبود عنوان دیگه پیدا میکنه اصلا ایر میاد عوضش میکنه که دیروز توزیاد جورش ایشون که در اینجا علم عوض نمیکنه مثل اون نیست اینجا شارع میاد عوض میکنه تصرف شرعی شارع میاد این تصرف رو میکنه میگه آقا جان شما که اختلافتون شد هر دو برگرده یا مثلا اگه گفت این اینک مال اون آغاز برد گفت این اینک مال میگه خود اینا که به اولی بدونه قیمتشو به دوباره بدونه خب میشه که به این تا جمع کرد خب میشه یکی شماشه که خب مثلا این یکیش درست یه شمالمون آوانی جواب اینه که ایشون میگه این اقرار میاد اینجا تاثیر میذاره و بعد از حکم حاکم اینجا آثار منجر به اقرار عرض میشه مال علم نیست اون صابری به نقطه علم بود این لاحقی به نقطه تاثیر واقعی سیه. در بین هست البته از کردم مثل همون مسئله سابق اینجا عادتا دو بحثه یه بحث کبروی که اگر شاهه آمد تصرف کرد این تصرف درسته یا نه. در بحث اصولی ما همیه. یه بحث این که آیا این حکم حاکم واقعا تصرف نیست چون یه مشکل اساسی اون حکم حاکمه یا اقرار، حقیقت اقرار ای که حقوق حاکم چیه چرا کجاش مشکل من وارد بحث نمیشه نه به اشاره میکنه اگر دو نفر اختلاف کردن حاکم حکم کنه این مال زیده زیدم میدونه هوا مال اون نیست در واقع خب اول نیا چون حاکم حکم کنه ترتیب آثار میشه شما میتونید زید بخرید هوا مال زید دیگه حکم کرد حاکم از اون وران شما میگیم زید کی میدونه مال اون نیست باز برنگردونه فقط این حکم ظاهری که حکم واقعی ایچ کاری شبایی شده اگر واقعی چرا اگر زیدین رو باید برگردونه اگر ظاهری حکم ظاهری خب با علم اجمالی که مشکل نداره تنجیز جلو تنجیز علم اجمالی رو نمیگه. شما چه حال میکنید معنی نکته چیه این نکته البته یه بحث فقهی اعجب این نکته در رواستو امرو نه هنزه در زیدین اون مقدمه عمرو نهنزله که اینا چرا؟ مثلا شیعه مراجعه به تابوت میکنن به دستگاه قضایی میکنن که اینا تابوته؟ بعد امام میفهمد که اگر که چی اونجا پیش این تابوت و قاضی به نفعه او حکم کرد حق نداره صحبه این مال رو میگره به این کانال حق و لحظه او ثابتند به این کانال عجیب و دوباری دیده که اگر مال هم واقعا مال اون درسته حبق واقع بود تابود گفت این عوام مال تو مالمونم بود امام میخواد اگه به حکم حاکمیت تاوت گرفت کان سهدن و امکان المالو لح دقیق سرمون پس این بحثی بحثی بحث یه بحث که رایی توی که انصافا مشکل داره و اگر حکم حاکم شد نتیجه چیه خوب دقیق بکنه اگر ظاهری شد و بعد بگیم حکمحاکم تا اون که در روایت داره تعقیب قبول میکنه این همون جوابای آقای خویه که دیروز ارشد کردیم مثلا اونجوری حکم حکمحاکم ظاهریش مثل فتاوی فقیه این واقعی که نیست نتیجه نتیجه اینه که برای خود شخص کافیه شخصم فی ما بینه بین الله اکتفا نمیکنه طرف مقابل اکتفا نمون شخص سوم بیاد جمع بکنه نمیکنه جواب ظاهری روشن شد ما فی اینی که آقای کوئی قبول نمی میگن مشکل میخوره سر اشکال اینجاست نه سر اشکال به لحاظ علم اجمالی دقت می کنه. لذا خود مرحوم آین ها اینی انصافان اینجا نکار خوبی گفتن مثلا از بحث خارجی بحثم زیاد بحث وصولی ما هم شده دیگه مثلا حقیقت اقرار چیه آیا اقرار مثلا از قبیل است از قبیل اماره اماره از قبیل اصله. اصل موجوده محرز اصل این بحثه ناینم مقوم ناینی اینجا داره که الان من نمیخوام وارد این بحث بشم خود ناینی این موارد و قائله که اشکال نداره ولیو علم تفصیلی بذارش از کم استاد سه مورد استاد اشکال میکنن آخرش هم مقرر گفته که ولا یخ با ان نفی کثیر المنفروز هذه المسائل اشکال و خلاف البته اشکال و خلاف جواب شده غلطی اشکال هم و خلاف هم. یعنی درست که <تصفيق> من, من این حرفا اما مشکل همین بود مشکل خودم ما موضوعات رو خب نمیدونم متوجه اضافه و این حالا رد کرده حواشی مفصلی بعد طری از مردم استاد اون آیه بوزمدی میفهمن چه مقدار شخصت از آزادات که اینکه چون اون حواشی همزمان پخش شد توی چاپ نجف هم من بود تو این چاپ هم حواشی آزادیا رو شاپ کردن تو اون چاپ نجری از توائل هست حواشی بگم آزادیا نیست اینجا هست. بعضی جهات بالاخره والای فاضل معاصر به قول معروف که تکین و سری جوکی احتیاط و قضايا طبيعت جین تا من نمیخوام چون بحثه از خارجیش که نقل میکنه اهل شوخی و به خلاف مرحوم دانایی که خیلی مقتین بود ما رو مازیه اهل شوخی و این جور چیزا بود بله بعضی جهات توی حاشیهش اگه دقت کنیم میذان تا دقت کنیم نکته اینه دلیلشون ما جوک نمیگیرن شن مثلا رو پرسیدی با احترام در این نوشته احسن جزاکه الله خیلن <تصفيق> خود اون که اشکال داره بعد از یک سفت صحبت گردن اقون جزاکه الله خیلن قدیده که شده بله هست این دهاجی دهازی ها جو که این به درمه دایی بعد از یک سفت صحبت از اون پی کسی من دنهاده البسائل اشکال و خلاف. پس خود قبول کردیمی درستیز مطالبیه یه خود. لا توش خودت اول چند دیگه هم دارا چون جا دیگه اتفاق کده به مناسبت می‌خواستم توضیح بدم توضیح ایجاد شدیم با عرض کردم چون جایی مناسبی اعلیحضرت این یکی از شرف مردم عاز درخواشی بر این کتاب فوائد الاصول سر اشکال بحث اصولی نیست سر اشكال بحث فقیه شد اون حقیقت و حکم حاکم چیه حقیقت به چی به بر نمیگرده در این که میشه این کار رو کرد این جای اج... اجمالا جای بحث نیست بحث سر اینه اگر حاكم آمد گفت این عوامال تو این واقعیت یا ظاهری اگر واقعی است میگه اگه خودش دروغه برگردونه خب واقعیتش رو برگردونه اگر ظاهری ظاهری تو اندازه‌ی خود شخص سوم میشه تاثیر بده این که ادله تفصیلی است ده تا تا اشکال سرش اشکال سر اینه و انصاف قضیه در کلیه این موارد باید یک نحوه به اصلاح حکم یک جوری مثلا حکم بینبهی میده تصور بکنیم که ظاهرش در بابه یک نقطه یک نقطه دیگه هم در باب قضاوت هست اصولاً اینطور میگن دیگه اصلاح در رحل خصومت نه برای واقعی گرایی دو نفر دعوان هم داشته باشن این دعوان رو حلش بکنیم اصلاح هدف از قضاوت رافع خصومته نه اینکه من در واقع این ابوامال تو ابوامالونه میشه واقعا چقدر به مقدار هم. اگر این مبدارهام قبول کنیم ما این مبادله اشاره میکنه یا نه اشاره اگر این مبدارهام قبول بکنیم شخص سوم میشه ترتیبا واسو داده پس این دست بر به اون مباحثی که در واقع قضاوت و تحالوف و حقیقت اقرار رو و درست هم انصافا این اون بحثات باید بشه یعنی نیست که ولی که ظاهرش اینه یعنی ظاهری که الان ما در عرف داریم اینه که اگر حاکم حکم کرد حتی در بعضی از موارد با علم به خلاف هم با سرگی با آثار میدن این دیگه حال اغلا هستی من گاهی نگاه کنم وقتی در مسابقات فوتبال داور اشتباه میکنه مثل چیزی میگه میگن اشتباه بعدا فیلم میگیرن نگاه میکنن مجموعه هیئت داوران میگن اشتباهات چون داور حکم کرده همه انجامش میدینه با علم به خلاف مطلب رو انجام میگن این هست یعنی این مطلب اینطور نیست دام علم به ندارن ترتیب و آثار بده در بعضی از موارد شده با علم به خلاف هم ترتیب و آثار بده. البته این به این مجلادش در باب قضاور به شوخی عشقه یعنی خود شخص که نمیتون ترتیب آثار بده اما از یک طرف دیگه ما میتونیم قاعد بشیم ما به استثناء خود شخص که ترتیب ترکیب آثار بده نسبت به بقیه آثار واقعی نه آثار ظاهری خب دقیق کنه مراده از قضاوت خس... فقط خصومت نیست، از این به قانونه وقتی حاکم اومد گفت این مال پرانه که ما قانون رو مال قرار داده پس برای شخص سوم میتونه ترتیب آثار بده تفصیلی برای تفصیلی باشه اصلا تو. انصاف قضیه زواهر و ارفی اینه یعنی هر بگی برامون اونایی گفته اصلش درسته اصل کلام برامون نایمی صحیحه توی بعض خودتای شبه پیدا میشه، که انصافت باید قبول بکنیم برای خصومه. شارع میاد گفت میکنه و منافع نداره که شاره مثلا بیاد حکم بکنه بحث علم و جهلم نیست که صورت قبلی باشه این راجع به خلاصه این ش... مطلب پنجم این شا... که شاره ممکنه این تصرفات رو بکنه درسته؟ این بحثی نداره ممکن در جایی روی خصوصیاتی شارعه علم اجمالی رو از تنجیز بذازه این مشکل نداره اما این ارز کردم این صحبت راجع به علم نیست این صحبت راجع به خود قانمون ن به علم. در تأثیر علم تاثیر نداره بود. که مع آزیا برمودم ممنم گفت گفتوارره میشه در یک طرفش اجازه بده مادام من علم به جامعه دارم. آاضا میگه میشه این کارو بکنه اما اینجا در تأثیر علم بحث نکرده. اونی که بحث کرده شاره ابار جده بدلله. اینشاالله تا حالا تو بحث های علم باز دومتهبه خواهد آمد که یکی از چیزهایی که جلو به تنبیه علم اجمالیه همونطور اون طور شائره مثالات شده بیمنه انحلال علم اجمالیه است به انشاء الله فراهم آمد انحلال گاه حقیقی مثلا من میگم این اناء دکتراسی نگیزه آب به این خورد اون یکی اساسات به اساسات میشه و یا انحلال و حکمی اینها از قبیل انحلال حکمی هستند شاره ممکنه دیگه وا چون میدونید یکی دارید من نگی که ممکن مشکل نداره نه اینکه شارع جلو تأثیر علم رو بگیره خوب دقت بکن حتی ممکنه شارع بگه هر دو طرف رو انجام بده ممکن مشکل نداره ممکنه بگه هر دو طرف هر. اما اونجا علم میشه موضوعی نه این که علم اجمالی از تاثیر انداخته از موضوع خارج شدیم همونجوری که شریحه سابقا عرض کرده پس بنابراین دقت بکن نکته فنی در تنزیه علم اجمالی رو خوب روشن بشه براتون نقطه فنی اینه هر جایی که ما جامع داشته باشیم حالا من از وجه جامع تعدیل ترم به ماده این ماده محقق شد خوب دقت بکنیم و در اونجا علم تأثیر نداشت شارع هم تو مقام جل خصوصیات زادیری رو ملاحظه نکرد طبق اون به اصطلاح ارتکازات انسانی میخوام بگم اصل ارتکاز انسانی فردی هم, هم. اما این ارتکاز فردی میاد توی حالات جمعی هم تجلی پیدا میکنه. قبغ این ارتقاضات اگر تابع واقعه باشه نفس این کار رو میکنه، برای اون ماده صورت دروستون میکنه. این مشکل نداره. تنجیز علم اینو اجمالاً یه قصره خون توی یکی از این دوتا اینا آمد اون اسمشو بذاریم به قول فلسفه و فلسفه معنا معنای اسم اسطلاح ما بذاریم جامعه یا بذاریم ماده این ماده که محقق شد و باز هم بالسانه ادله اعتبار قانونی ها معلوم شد که اثر رو برده رو خود ماده واقع ماده در واقع هم توی یکی از این دوتا اینا هست ولی لذا گفتیم اگر اما گفت نه علم داشته باشی تا ایل مورد یه تأثیر نمی کنه تا تصرف کرد گفت خلان نکته مهمه با تأثیر نمی کنه نه اگر گاهی اوقات خوب دقیق بکنی یک ماده ممکنه تأثیر بگذاره لکن با صورت ما اونجا هم نمی کنه این مثال پنجمه مرحوم نایلی از این قبیلی یه مثال اورفی بزنن قبل از مثال شریع مثلا بگن آه تریاک که برای شما مزره دارای ماده فلانه یک ماده معثری در تریا فلان وقت به شما بگن شما میدانید که اون ماده معثری یا در هیروین موجود در این گروس های از اکس چینا موردن ما که شروع زیدیم گروس های اکس تریا که دیدیم این ماده معثری تریاک یا در به اصلاح این ما کچی که بودیم دو حاضرین دو پیرمردان خیلی از ما که هم خیلی نسبت شدیدی هست برای ما پیدا شده خیلی حالات بدی نمی کسیم در حاضرین تریاغ یک ماده معصر داره که این ماده معصر دقت بکنی یا توی هرائین هست یا توی ترسون است ما هر اون اینه وقتی این فهمیدی این معنا هست یه ادعایی میکنه میگه هم از هروئین کوچاش هم از چون بالاخره اون ماده مؤثری که مضرره است پوش تصویر موجود. اما این یه شرطی داره شرطش اینه که اولا این تاثیر مال ماده باشه که در فرض ما هست ثانیاً باید ثابت بشه که این تاثیر مال ماده در ضمن این هیئته خوب متوجه شدید شما فکر مثلا این ماده مؤثر داره سیل اما همین ماده مؤثر هم شرایط داره هم زمان داره هم مکان داره هم کمیت داره هم کیفیت داره ممکنه به شما بگن سیل رو تو زمستان بخوری اثر نکنه تو تابستان ممکنه اینطور این حجم این اثر داره این حجم نداره ممکنه بگه آ این ماده مؤثر اگر در شکل ترییا باشه مذره اما همون ماده مؤثر در شکل باشه مضر نیست مثلا با قول معروف میگم ایشون بعضی‌ها توی محرم‌ها تریا طریقه زیر مثلا توی کینان زبون اینا فنون مختلف از جنون ارجلون ارجلون فنون دردی که توی مثلا خورما میذارن یک خوره که مثلا صبح مثلا اونایی که اهلشن تو محرم‌ها ناراحت بشن خاصه حالا پس این این ماده اگر در ذنه خورما باشه اون مؤثر نیست روشن شد داشتن شما پس اینطور نیست که این عمل تکلیفین رو مثال بزنم اگر به شما گفتن درسته ماده مؤثر تریاث اگر در شکل تریاث باشه مؤثره در شکل هرانین باشه مؤثر نیست در شکل اکس باشه مؤثر اون کیه ماده هرانین چیز دیگه هم اضافه شده جلو تاثیر رو میگه خب خواهی نخواهی علم شما اینجا مؤثر ده بشه. تنجیز میگاره. این مثل همین مثال تحالو و تحاکم <تصفيق> این مثل همین مثاله ما بحثمون روشن شد چی بخوایم بگم؟ بحثمون تو علم اجمالی دقیقی روشن شد یعنی اگر ای باشه حالا به تحبیل من معنای جزید که ادراک مرحله ادراک اگر این معنا یا ماده ثابت شد خوب فکر بکنید که در ذهن این دوتا صورت باز هم معصره اون قصر ی دم که شده توی این اناهم باشه موثر تو اون اناهم باشه خوب دقت بکنید اینجا جای شاره ممکن است شاره بگه که نه اگر توی این انا به عینه بود موثر خوب این ممکنه ما توضیح بده ممکنه مجسی هم نمیگه ما مجسیان حتی تعرف الحرام نیرو بری این چه فایده این ماده معصره اما به شرطی که در ضمن این صورت معین باشه اگر گفتیم این ثابت نشد سوال، این ماده موثره در ضمن این صورت هم معصره چیزی هم واسه نمیشه ما هر خنون اینه در اینجا خود انسان در معیار پردیش چه کار میکنه میاد به این ماده به واقعش تاثیر داره واقعش هم, این هم این دار در, واقع در این دو شکل تل... موجود رنگ دو صورت هم دستات حالت هرونی موجود در حالت قرص 1 قطعاً دارو اشتناب بکنم چه این مثلا موزه قرصی نرد درست در بدن موزه مثلا حالا از عجایب اینه که با قدیمی ها تریافت رو جزای این تو کتب قدیم نوشن به هیچ وضعیتی تا به مریض هم تریات تجویز نکرده هیچ به مذهب که حتی این اپیوم که به اصطلاح موزه تریات اون حالیکه صدا که ما میگیم اصلی در اون اصطلاح نخیون میشه. اون شیری که از طرف فشار از بوته ای میگه. این اذیون رو نوشه به هیچ خیلی عجیبه چون بعضی از رو قدیما ها کشیده مثلا پیش قدیما بود. ولی این به هر نوشه به هیچ، حتی به مریض هم افیون چون ممکنه بشه و این خود و اگر بودین برای مریضی که احتیاجی به استراحت داره بزنم بو بکنه خوابش رو بره حالا که مثل گیجی چون این مواد مخدر این چیزای قرص خواب آور اینا که نبود والی اونجوری چیزا همین تریاق رو بکنه به این قرض میگه این مضر خوب اگر فرض شد اون ماده مضر در ضمن فرضسون هم باشه در ضمن فرض شد میگه قرص اکسان باشه طبق ارتکاز خود منم اینو میگم اینجاست ما اینه این نفس این کار رو میکنه به قول آن قوای باسنه که ادراکه که حفظ که تصرف این تصرف قبری رحمه تصرف در معنا چی کار میکنه؟ میگه این معنا تو این صورت هم هست تو این صورت هم هست و محروض اینه اصلا سر تنگیز علم هر جمعه های این ادم ایتوانی اینه اون ماده باید با سر باشه اگر به نقطه از دکار در زنه طرف معصر نشه خونجه تنجدید ما بحثمون اینه اون مطلب که در بحث ادراک و قواه اون یک بحث واقعی ما مخیرم اون رو بکشیم تو بحث اجتماعی تو قانون اعتبارت قانونی اونی که در واقع هست بکشیم تو اعتبارت قانونی ما مخایم همینه بگیم تو اعتبارت قانونی هم بشت طبقه همون ارتكازش عمل میکنه هیچ حقی نداره بلا؟ قیاس هم نمیتور میشه. تو قیاس و همینطوره مشکل قیاس هم, هم مشکل قیاس و نظام ما توضیحی دادید مشکل قیاس با احتیاط اینه در قیاس خود حکم به عنوانه ثابت میشه گفتیم سرایان از ماده به صورت به عنوانه نمیشه در حکم نمیشه اما در احتیاط سرایان از ماده به هیئت هست، با که نه به عنوان حکم، به عنوان جامعه مشروط. گفتم اینجا میشه؟ دوستا سر دستی گیره. فرضت قیاس، نه تو. یک هم گفتم قیاس هم این کارو میکنه. هم چی میاد میگه؟ میگه آقا اون ماده که اثر اسکار، اسکار تو شراب انگوری بود تو شراب خرمایی هم هست. چه فهم میکنه؟ این ماده دیگر کاری در ذهب نه هر دو حرف ما اینه خوب دقت بکنیم حرف ما با ها خوب ما حرف اینه در اعتبارات قانونی خوب دقت کنیم اعتبارات نه در موضوعات خارجی در شباعت و حکومیه در اعتبارات قانونی اون سرایان های ادعای ما نمیتونه رو به عنوان ثابت بکنه مثلا دیگه واجبه بگه حرام اینجوری استصال هم میتونه. شالگرمن شو استصال هم میگید این خانم تا قبل از اینکه خونگرفت بشه یه روم کنه یه روم الان هم یه روم بسیار. اونا هم میتونه. پس اگه شالگرمن تو ما میتونیم استصال در جواز داریم سایق بودیم. میتونیم دعوت باریها، میتونیم از دیگر دار کودا ما خودمون مشکلش هم نیست. داری خون کرده ترجمه داره. اگری مادر در ما از کردیم خوب در شباهات و حکمیه خوب دقت رو تصرف و ابداع نفس بر این که یک عنوان رو ثابت بکنیم و نیست اعتبارات و از معتبر با بیارتش من نمیتونم درست بکنم من نمیتونم بگم این شراب یه حیعتی داره شراب انگوری یه ماده داره اسکار این اسکار شراب دیگه هم هست من اگر بکنم این کار رو نمیخوام بگم باطله ا اذا انا به بذارده اعتبارات میگه اعتبارات بود معتبر میگیرید این هر ما استصحاب همیشه اشاره می کنه بله توی مرحله دوم تنجیس که موضوعات خارجی باشه ارزشی ندید قبول کردید این کتاب صابرن نسب الان ندیدید توکل موقع صلوط این کتاب درید بود الان سر. این صابرن سا... کتاب صابرن نمیگه زیر بود الان شامل نمی توی موضوعات گفتیم اشغال نداره سرشان به نظر ما این بود به نظر خود ما فرق بین احکام و موضوعات اینه که در باب احکام مهمن و شارع دخل و تصرف میکنند قالبا توی موضوعات شارع دخل تصرف نمیکنه. یعنی حصولا این نیست، شارعی وزیفه نیست. بیا بگیر تو باری از این راه بدونی منگیناتی یعنی توی این کارا نمیان تو باید اینجوری مثلا این مایه رو تو آزمایشگاه بینی پلان ماده داشت که بید ه این مایر روی تو آزماهشتا بودی ماده بول دار کنن خوب اصلا چه این کارا دخالت نمی کنه؟ خوب دقت بکنید، کار مقامل نیست خوب پس فارقش اینه در تنجز در شبهات و حکمیه که اسمش تنجز کبره هاست شارع دخل تصرف داره البته مثل مرحوم نایی و آقایی بگن در اونجا هم نداره ولی زیاد اونا علم موجهت نزادی میدونن ما اشکال داشتیم میگه شما از هر راهی علم پیدا کردی یا لازم بود از قیاس علم پیدا کنی نداره اندما شارع نه کرده از قیاس میگه تو بیخود علم بری ولی اگه علم اومد حجت ما میگیم نه وقتی شارع گفت قیاس نه علمم پیدا بشه حجت این هر دو ما است اطلاف ما یعنی دقیقاً هر دو ما مثل هر دو اخباری و صحت این شریعت مروه آیا شمس ما میگه می اما تو موضوعات متعارف نیست که مستهیده. رسی نیست تو موضوعات قانون هنگاه مکملدرگیار، یه این توی گفت این مایه بوله، از توی گفت این مایه بوله، از توی گفت اینکار نداره؟ گفت بر اینطوریه، آب، اینطوریه، خم، اینطوریه، نمیدان کنان مایه اینطور دیگه کار نداره که در خارج خود را میگی پیدای شده، دکتان این نقطه فنده؟ بله، در مسائل شبهات تو خوبهیه نه به عنوانه، به عنوان جامعه، عنوان والمشکوک نفس میتونه ابداع بکنه و این اوغدایی شارع هم نهی نکرده خوب دقت بکنید این ابداع نفس میاد من میدونم یا نماز جمعه واجب یا نماز ظهرم به عنوان اینکه محتمل الووجوبه در یک دایره هر دور بخونم اینش حال نداره حکم میکنم من میدونم یا ملاقات با این شده یا مثلا نزدی نوشته دارم نزد کردم در ساعت فلان جا باشم یا نباشم حتی خودم نمیخونم یا نظر کردم صدقه یا صلاح جوری این صدقه نمیشه مثلا صلاح خود دویجه. اینجا ما پسیم اشکال نداره لیکن نه اینجا حکم بکنه به وجوب صدقه نه اینجا حکم بکنه به وجوب صلاح حکم بکنه, بکنه به وجوب اتیان اشکال نداره زید که آب قطعه خوری در این گتاینا افتاد حکم نکنه این ملاقی اون هم ملاقی حکم بکنه به وجوب اجتناب این مقضا توی احکام که این به تصاریم شاره برمون گرده این به شخص من برمون گرده من نیمونم شاره شفار کرده هر دار انجام بدم این, به... این مثل اسم اول میر که برگرده من با اعتبارات نسانی و خود بیام شاره پس بنابراین اصول دیگه محرزه مثل احتیار این مثل تصرف لحظه یعنی معنای جزئی بقول خصوص ادراک شده نفس میاد این معنای جزئی در دو صورت میبینه من به جای اون تعابیر گفتیم ماده و صورت که باید این شرایط باشه یعنی این با این شرایط نفس میاد ابداع بفه نه مطلقا اون ماده باید احراز بشه اون ماده مؤثره باید در هر دو باشه یعنی قابلیتش اون ماده الان کل تغییر مؤثر باشه هیچ نحری اون قانون نیامده باشه از از کرده باشه وقتی این شرایط زور شد و من میگم و از این انا هم احتراز بند اونا و این مقدار به نظر ما اغلاقیس و ارفیس و اگر مراد مرمومه آزیه از علیت که علم اجمالی علت تامه داره تنجزه ایشان این باشه انصافت علیت ثابته ما اصولاً ارز کردیم اون جامعه یک حکم داره کل کلو طرفه یکی داره به نظر ما حق با آزیاز مهمونایی میگه چون جامعه میتونه شاره به یک طرف بگه تحکم کن یک طرف بگه, بگه از حال تارو تا کن آغازی میگه نه یا بگه هر دو طرف انجام بده علم اصلا منجز نیست یا باید بگه هر یا علم و علمت تامه سر من ما از کنیم حق با آزیاز انصافا تو این مسئله هم با خن و نظریه رو به عنوان ادگاه تفسیر طرف رو کنه در حد از الاحاد دو سواد تو میکنه تا هیچ شرعی از این جهت نداره نکته بحث به نظر ما هر ممرم عادیات و لزاح خوب با تکرار میتام احتیاج هم در ذین علم اجمالی هم در شبهات حکمیه منجزه هم در شبهات موسوعیه لیکن تنگیزش به این معنا تنگیزش به مقدار ماده نه به لحاظ صورت نمیگه این ملاقی نجسه نمیگه اون ملاقی نجسه نمیگه این یکی اونم یکی ملشتن میگه یکی با علیه که اتیانه این همه نمیگه صلاح واجبتو نمیگه صدق واجبتو خب دقیق بردیش کن این تحقیل ما از علم اجموع یه چون بحث تموم کردم فقط من دو تا نوکری هم عنوان استدراک موافقت نظریه که در بحث هم هست اطلاع که اول ما در خلال بحث‌ها هست که من دقیقاً معنی استاد رو نمی‌ذارم که ذاتی علت تام نمی‌دونه یا اقتضا می‌دونه چون گفتن اینجا ایشون بحثی نيزارم چون این بحث علمي اجمالی و در بحث اشتغال و, اشتغال و گفتن نگاه نکرده ذهنم نیست الان ولی واقعا نبود و گفتن که قاعده تو مثل ازا به علت تامه باشه با. حالا داشتم که قائل ما غیر قائل درم. خود مرحوم قائل به الیار تامه نیست. حالا توضیح بده اونجا من گفتم قائل گفتم نه سریع صریح نیست تو طب این مقدمه. همون دام اثبات همینه که اون مقدمات میگه وا الیار تامه بگیره. اما ایشون قبول نکرده و علامه فتقدری که اینجا الان میشه من هست همین کتاب مسوال و اصول ایشان صفحه 409 اگه مثلا دليل ترجمه آசியா رو آورده ماذکر اون بغداد اساسی اکثر به مرحوم آقای کوی خیلی کب از این دو استاد دیگه شو نام نمیبرنه که آزیایی که مرحوم آقای اصفهانی آقا هست آرش واسین بیشتر دارند گاگوی هم هرگاه آزیار زن اسم نمیبرن اینجا بغداد در بغداد اساسی اسم ورده در این چاپی که شده در حاشیه اشاره به سفرت مرحوم آزیار کرده این دو آلا مقرر حاشیه این مد Theory هست مرزا کنها او بعد آن سبری کلام آغازی هسته کلام آغازی هسته که ponieważ نهبار میکنه و بعد, می بعد اشخال میکنه اولا و ثالیا میکنه اشخال میکنه وقتی برای ما تأجوباموره اشخال اشخاها همschال نایمیه اشخال اولیه اشخال هم برای اشخال که آغازی ها به کرامنیان میکنه ش که Julia چون اتشون اشخال میکنه که بریه چطور مثلا هر چیزی که میزنه بعد ایشون مثال میزنه مثلا فک ما یجوز و, و ان در مورد علم تفصیلی به تضییج و الامتزال احتمالی که ما فی مواد قاعات فراغشجاز این این حرف آزماییه که قولی ما هو آزاد حجمنی اشغال کرد باز آسیاب عاملون وقتی به این جوابنایی اشغال کرد تعجب از استاد جواب آزاد نخوندن خیلی عجیب بود خیلی پر با تعجب واقعه ما که با کلی طلبی قرار دائمی بازیو اشغال کرده بار دوم مرتب آزاد شده به معنی اشغال کرده میگه تجولات اشغال. دقت فهمیدید؟ اون اشغال نایینیشون آوردن که ها با حاصل دینه. خیلی عجیبه. شال مثلاشون نگیدن، اشغال دوم عادیات نگیدن. والله خیلی تعجب از حال در هر حال در صفحه 413 ایشون تفصیل می‌برن مادر اسات هر سال جميع مالكر موافق مقام انه لا مانع من جعل الحكم الظاهری فی بعض الاقرار. بعد ما مقام مسو علی این معنا اختصار این علت تامه من تا حالا شون در بحث های شد دو سه بار تکرار کردم که قائل هم بعض استاد قاعده اینه تاموشن سوالی شده و عکس مطلب علامه بحث ایشون تصریح فرمودند به و قائل به علیت تامه نیستند بلکه از آن را راج به یعنی توضیحی کرد سرد این نکته اول استضا یه نکته هم سابقا که در ملازمه مغنونایی مثلا در در مرتبه علل احکام نمیاد در مرتبه معلولات نمیاد و نرجی که از آی ظاهرم اشتباه ما آی ظاهرا اشتباهی رخ ما اینجوری مسئله رو از روی خویم نرجیم آی خویی جارم آی در این بحث نیست وقتی مراجعه نمیدم نه مغنونایی تو رساله علل هم جاری میکنه حالا من این اشتباهی جو پیش اومد شد و تو منتهها قبول کردن نه بتوندی ناری قبول کردن که در رتبه علل الامر جاری میشه به علاوه کل جمله و علاوه به و موجبه جزئیه ان قبول میکنه در به اینشون چون سابقا گفته بودن اون مطلب سابق فقط در مثبتی که به مربوط نوعی میشه مراجعه به قواعد اصول تصریح میکنه در رتبه علل الامر جاری میدونه یعنی ما احراز ملاکات میتونیم بکنیم از هر با از باهوی خوبی که الهراز ملاکات که احراز ملاقات میشه کرد. و ما چرارن در خلال این ورسای دوره اون دوره مختصراً همون کلاوی رو که مرحوم آقای خلیل مبانی اون قرازی گفتیم از طریق الوحید احراز ملاکات غیر خطابات مثلا ما خودمون تنها راه احراز ملاکات همون خطاباته از خطابات ملاکات رو احراز می‌کنید مستقلاً احراز کامل ملاکات مشکله من به مرام لاینی مطلب بسازیدم این مثال اشتباه بود به قائل به قائل به قاعده ملازم است رد صاف وصول میکنه کل ما حکم به اقل حکم به شر قبول میکنه احتمال میدن شاید آیه بزرون در اواخر برگشته بوده نه احتمال اینکه من شکی میردم مثلا توی کتابشون هم به نقد موجره جزئیه نوشته مثل نائمی خیلی تور نرفتن اما نائمی هم گفته وصول باطل است تا وصول قبول نداریم و قاعده ملازم ثابته الان به این مطلب تثبیت بشه راجع به آیه که در درسته مرحوم آرکوی در رصفه علل قبول نمیتونه چون رصفه معالی قبول نمیتونه اما اون نقل از نایه اشتاقی در نظام شنیده با زمان در کتابشون نیمده اونم اشکال داشت و سالالله و محمد و آسده